اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانا سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا دلبا إلا عابل سبيل حتى تعتسروا وإن كنتم من مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ساء الم تجدوا ماء فتمم ممنو اى من مم بوجوهكم وانديكم ان الله كان عفو غفورا الم ترى الى الذين أوتوا نصيبا ان يكتبوا يضلوا ضلاله ويريدون أن تضل السبيل والله اعلم باعداء الامم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قولوا بالله اشهد قولوا دين ايلاد الرحمن الرحيم بعد بیان قبول مسلحی رعایات اللہ سبحانه و تعالی بیان امر مسلح را می نماز هست نماز نماز هم باید در حال بیداری و حشیاری و دانائی خرمید در حالی که نشاو و مجد و بیش باشید بناسی که نماز نید این نمازی نید شور بخامر حلال بین در آئی ما قبل خاندین که در آر مناقی هست لکه مزردش خیلی زیاده بسیاری انسانها اون موغا شراب را ترک کردن وقتی این آیا نازی شد که موغا نماغم شراب حرام شد اللہ خبانه و تعالی فرموید یا الذین آمنو لا تتخبوز خلاف مومنین شما به نزدی که نماز میری در حالی که نشب آشید سوکر داشت رو یعنی در موقع نماز مسکر استعمال نکن فاکر بگانید انچر امین میرید و همچنین نزدی که نماز میری در حالی که شما جنوب مگر آبر سبیلی حتی تست شدید حتی تعالیم ولا جنوباً در حال جمعید حتی که غصر کنید تل لا آبید شدید مگر شما کنید کنینده راه باش؟ فس اینجا مراد از صلات موضع صلات اگر تکر راه اینه سو مشبولید که از همین راه بگذرید خب در حال جنوب میتونید بگذرید بگذرید مگرد کسی در محصر خوابیده یا شر راه او مسجده و دیگه راهی ندارد بگذره جنوب شد لغزت امم دکنه و بگذره یا مراد از حبور کننده راهی یا مساقری حالا مسافر آب ندارد دراز آبر شدید تشریح کر بیز بودید یا علا سطرین بودید یا آمدی که از شما از غایت یعنی آنکه ناقض بزور از قضای آزد غایت زمین پند پست را میگن غود را میگن و مرد از شما برای بول و براز در جاهای پست و پایین میرفتن او زبانی که انتظام دکشتری این چیز ها نمید یا آمدی که از شما از قضای حاجت کہ او لا یا شما لمس کردید زنان مرات میرا نسیدی با زنان کہ ناکز غوث رمیش یعنی انسان ضرورت پیدا میکنه. این لا مستو حسد ایوہ مشابی نہیں اگر کسی در ذنش را هم وزیش میشتنه لیکن احراب لامستون به معنی جامعاتون میکنه کنایه از نزدیکیه. فلم تجدو ما اند شما آب نیاردی برای خسر و وزیر کلی حضر اجازه تیمم هست فتیمم فتیمم سعیدن و طیبا تیمم به معنی کست فست اراده و خاک پاک کنید سعید منای خاک سایی با پاک یعنی خاکی که انسان تغیمون می کند باید هیچ زمان ملاقات بسیده باشه خب طریقه تغیمون به چهره هایتون یک سربه یک سربه می زنید چهره را مستنید. و ایدی با دربه دیگر که احلاف دیگر دربه دیگر دسته ها کنید دین الله کان اکو و قبرالله طالب وخشند مهربان است. از این خاطر دستور حکم آسان میده، دستور آسان صادر میکنه. که اگر آب ندیدید و نداشتید چه شلوک بودید و چه دیو سو بودید تمام. چون الله تعالی بخشنده است و مهربانه. و شما دست بخاط میزنید. و اگر به خاطر می مالی الله تعالی شما را پاک نیست کار های الهی بهانه می خان بهانه می خان اگر چه اعتماد کی گناہ این با عقل شد کہ شما اشارے پاس خدای عزوجل تحقیق خاتم جنن گورندگی و صفاحت داره کہ اب سنین رنگنده باشه بس لیکن اگر خدا می گو بمالی تو بمالی تاک تمیز بشی زکاسه یا چیزی را دا حالو ده از از از از خاط می خاط می شی اللہ تعالی برای شهولت و قفت دو زربان این دو زربان در حد مس باشن مالش نیست این هم ازانجاکی حقو و غفورا هست بسیار اب کننده و بخشنده هست بین خاطر دستور آسان انعایت می فرماید از انجا زیدر بر منافقین هست منافق که خود را به لواس مسلمر مطرح می کردن و خیانت می کردن اللہ تعالی زیدر شمید کنید عرم تر الالذین نصیب من الكتاب شما توجه نمی به طرف کسانی که دادش شده اندید سهمی از کتاب نصیبی از کتاب با وجود این استعباد اول کتاب دارند سهمی از کتابهای آسمانی دادش شده لیکن این حد شنک ایانت می کنند یشترون زلالت را خرید می یعنی انتخاب زلالت در برابر حقایت با که کتاب هم دارن مرد اول آنها زلالت این هم را انتخاب می کنن در برابر حقایت و مرد توبون آنها یریدون ان تذل و شبیل دارن و اراده بمراهی شمار از جاده مستقیم هم دارن چقدر استقبال اول که ستاب دارن، لیکن انها زلالت را در برابر حدایت انتخاب می کنن و اراده گمراهی شماع از جاده مستقیم هم دارا و یریدون انت دل و شریف اراده دارا که شماع هم از جاده مستقیم گمراهی شئی این مرز دوبون انها کی ازلال قسلی برای مومنی نظر اگر شما دشمنان خود را نمیدانید و خبر ندارید هیچ جای خطر و خوفی نیست چرا؟ که والله و آله به آدائکم اللہ تعالی از دشمنان شما خبر دارد شما اگر دشمنان خود را نمیدانید، خدا که می و خدا دوست شما دوست برا خبر می از این خاطر به مثاله شما و تواتر می فرمائد و شما را اشعر عن همه حضر قام دارد کفاب اللہ وکیلہ ولیہ کافیت اللہ تعالی برای کارسازی که کارسازی کنے و برای شما شارستازی کنے و کافیت اللہ تعالی برای نصرت و مدد شما شما و خدا باشید خدا شما را جفایت می کنے خدا شما را بسرات مستقیم کتابیت میکنند چون که او کار سازش شما هستم دادگارش در برابر دشمنان شما را نفرت میکنه کارهای شما را روبرو میکنه شما با خدا باشید خب اینهایی که کتاب داده شدن و با وجودی که کتاب کتابن زلالت را دربرابر هدایت و آرزوی گمراهی شما را دارن این ها چی کسانی هستند؟ الله تعالی بیان اوتو نسیب من الکتاب را میکنند. کنن می فرود من الوزین خواهد این آئی که زلالت را دربرابر هدایت انتخاب بکنن و طالب و آرزو و تمنای گمراهی شما را دارن این از این آئی هستن که یهودیان. هستن چرا خود را حاضو می گفتن. یعنی ما از بسال فلسطین رجوع کردن خدا پرچیز از آنجا خود ان این لکبره یا خدرت یهودانی اصدنی دارن پر بزرگ حضرت در یعقوب علیه السلاط و السلام این ها از کسرانی اصدن جهادوه در حالی که یحرفون الکلمه اما واضیه این دیانی یشترون دلاله اینه چطور دلالت را انتخاب می کنن؟ در حالی که تحریف میکنن کنن کلام الهی را از جایش که هر رقون کلمات الهی را از جایش تحریف میکنن، تغییر می این بیانی اشترون دلالت لفظا یا مانا و بیانی یعیدون انت دل و سبیل اینه و می با زبان به به اصطرح تحکیر و تعظیم که سمید ما شنید ما هر پار شنید تو معنی اینه ببینی ما هر پار شنیدی یعنی قبول ندار شما می بینی یک انسانی گاغایی که تردی رکن نتردی رکن که که هر پسنه نگه بابا ما شنیده می هر پار منی هر پار شنیده یعنی این حرف های شما قابل قبول نیستند به ان همین خاطر سمینه لحظه تحکیر به طرف لحظه تازمه شنیدیم و در غل میگم چهان چه شنیدیم حسین را ناپروانی را میکنند این رسل دنیا همین این از این کانا میخوان شما را گمراه کنند یوریدونان قدر یا سمین با زبان میگه سمینه و با میگه حسینه و باید باید میگه وسمه ایشنو غیرش مسمه مسمه اون هرکی قابل عرضش و سما نواشد یعنی یک کلمه خیر هم نشمه یک بیرم همه غیرش نیده نیباشد یعنی همه کلمات شعر بعد نالاحتی این توی بیشنه این کلمه بدعایی وسمه غیر مسمه غیر حال کلمات شنیدنی یعنی غیر مسموم باشه یعنی قابل شنیدن نباشه شنیدنی هایی. زائران معنیش اینه که شما بخندید خدا کنه که غیر مسموم باشه یعنی کلمات باشه که در خرابی بی نباشه چون غیر مسموم دو جنبه داره. یک جنبه غیر مصمئینه که حرف بد نشنید. یک مطلب غیر مصمئینه که حرف خوب نشنید. اینها ظاهراً این کلمه را می که شما بشنوی خدا کند که حرف بدی نباشد. اما خوبی بشنوید. و یک مطلبش اینه که حرف خوب نشنوید. امت رنج و بلاو ناملائه اینها کلمه می تو که دو زوجهتی من خاطر و رائنا می گفتن رائنا من در حالی که لیم بیال سنتین این یا از راولتها سابلم تاکیش شاقان دیم یا از راعینا یعنی چنفانه و اگر از باد راعی رائی مراعات باشد معنی خوبی دارست مراعات مارا بی پرمو لیکن در حالی که این غیر مشمع یا رائنا را می گفتن یا السمینا رمی می گفتن لائم بی علسلتی این لائم حال ہے از زمیر یو حر رکیو تحریف می کردن کلمات الہی را از جائے گاہش و با زبار می گفتن سمینا و با غلب می گفتن سینا سمه نماز شنیدی یعنی این سنیدنی که شما را اطافلین نکردن وسمه غیرمسمه رائعنا می گفتن در حالی که خود گجمی کردن زبانهای خود را لحجه تحکیر به طرف لحجه تاکیر. نیم به از جنتی هم زبانهای خود را تحجمی کردن رو اینو رو اینو کسی دستور رکھتا ہوا در حال کتابان کہ دین در دل خود دین را طانن نشد این پیغمبری موجود ما اینقدر مسخرا شوخیش میکنیم هیچ چیز متوجه نمیشه طانن هم در دل نشد با خودش در قلبش الله تعالی میگه اگر اینا میگفت سمعنا فقط و اسنا را نیت نمی کردن و عطا به جای اسنامی می گفتند و برکت شما فقط شما از ما بیش شما از ما بیش نرید گفتن کلمه دو جهتین غیر مصمره اضافه نمی کردن و بجای رائناتی رائنات زمان کتنی کردن بان زورنا می گفتن بجای رائنات تو لکان خیر آیا بود برای آنا خیر بود با اعتبار نفت در حق کانا خیر بود نفت داشت برای آنا و راستر بود یعنی سخنی در مغرق در موغه بود سخنی بود که بمحل راست بود لیکن لانت کرده اینها را اللہ تعالیٰ بسبب کفر که درون اینها رسالت شما قبول ندارند و این کلمات الهیانه آمیز و کلمات صحیح هدین را اعمال نکند اینان خدا لعنت کرده به سبب خوب کی شان خان جامداد لا دستمره الاتی نے کہ فنا در آینده تم ایمان نمی آوردن الا قليلا مدد خیلی کم همان رائی که این چنین انانه و توی عدد در حال هست بر نه اینهاي کشمر افانت میکنند ما شنیدیم، ما شنیدیم. لذا من اینه شنیدنی که اطاعت باشد نیست. یا وقت ما میگم بس نو، غیر شنیدنی باشند. لذا همه غیر شنیدن باشند، غیر شنیدنی باشند، غیر مسموم هم باشند، همه بد باشند. اللہ سبحان و تعالی ان ہر لعنت کرے کہ رسالت شما اعتقاد نہ داریں خدا لعنت دا کر دے پسመረ لعنت ہی ایمان کم آمین بیمان نشدیم ایسا ثانی که شما کتاب دادش دید قلماء یهود نسارا ایمان بیارید که عن کتابی که ما نازل کردیم چون ما نازل کردیم مبتدی ایمان پس و اون کتاب هم تصدیق می کند لیمان ما اکم کتاب غیرت پر شما داریم این ایمان شما کرلدیم باشد که نتنسا وجوہا ما ترار اصاب کنیم قد مرد کنیم این چهره هره حالا ازبار هم نسل پشت یعنی قولتیم که شماره مرد کنیم و چهره شماره که چشم دارد دینی دارد لب و زبان دارد نسل پوش فموار و صحب نچشم برای شما بگذاری ون ون و ندینی و ندهان و دمیانی اون بزرگی خدا هر بسیاری ها تحسید اندو یا ایغا الذين اونتو آمینو بمانا لما ان هم من قبل انات نشددیمان قبل ادین کس خواب و ان پشت بگردار گردانی یا کم از کم لانت اصحاب یعنی آنه هم ایمون و خنزیر کر آدو دهیم سنان لعنت, لعنت اصحاب اصحاب شنبه هم ایمون امر الله مفقولا حکم خدا حتما راست صادق واقع از که از این دوتا شما بیاری شما کنیم ظاهران شما را مسکونین یا طبعا شما را مسکونین نسل خنزیر دیه غیرت کنین مثل میمون رکاصتون شما امروز مثل یهود نسل را ظاهران مثل خر و غلام زن و مرد اینها اصلا ننگه کنها به خدای و به کتابی و به چیفی این حد اعتقاد سکتا کامل شرافت انسانی اینها از بین رفته تا این حد این ها بیه دیرت هستن و بیه شرافت هستن خدا حافظ دیگه من اون داره دیگر داری دیگر تاس و در دیگر این همون خود در بیان زجرات به طرف مقصود اصلی توجه داده شد. همانطوری که واعظین در اصلاح سخنرانی به طرف سخن لازمی توجه می دران. اللہ تعالی تعالا پرمود نجاست کشور کر بیان کرد کشور شنان بلایی است که الله تعالا قیامت یکی از نوع مشکل نمی نشیند. اینا الله لا یافرا یوشکرین. به تنتیف خدا ایستم رشته شرک واقعی کردم. اکثر وادی بازی توحید میخوام بیان کنن این آیا میخوانن این شرط بخشی دنی نیست خوبام این سمره شرکی شرط چی نتیجهی دارد مقابل اف و بخشی شنیست باقی شرط چیه این شرط نیست شرط واید دوتیدات امادت غیر الله یا اعتقاد کردم برای غیر خدا صفاتی صفاتینا که آن صفات به خدا احتساس بر این شرط است این سمره شرک اللہ تعالی بیان کرد که شرک با غادم و حسد دارد این ها قیامت بی ایچ عنوان بحشیده نمی شد با وجودی که شما را هم احوانت شرک هم می کنند این اللہ اللہ یخیر انیو شرکده به تحکیث خدا نمی بحشد شرک با خودش را شراکت با خودش را و می بحشدون دناغایی که غیر از شرک باشند تیگه برای هم کسی خدا برخواد قیامت غیر از شرک و کف دیگه هر گناه بعد از عذاب یا قبل از عذاب قابل افعش دارد دیگه شرک و کف قابل افعش خدا نجام دیگه چرا اللہ تعالی شرک را نمی بخشد از هیچ مشریکی این گناه را دور نمی کند خاطر اینکه هر که با خدا کسی شریک کرد او افتراد کرده گناه بسیار بزرگید چرا تورین خدا بندی شده با خدا دیگران را هم سپه و هم مغام دانسته همان طوری اللہ را سجد کرده غیر اللہ را هم سجد کرده اللہ را حاضر و ناظر داره خدرت توک و الاسواب دیگران را تصور کرده اللہ علا این صفات اللہ خداییت حضر مشرق بزرگترین جنایت را انجام بوده اکترار کرده این بنای ازیار بدورگی را به جرم ادیم قابل ترکم نمیشه. بعضی دازر ادامه زجرها در واقع این جمله به اصطلاح محسوب بود ولی حتی تا کرده که به در ذهن که اینها شماره اخوانت می‌کنند شیر کمی می‌کنند شیر اینها قابل افت نیست. زدی دیگر اینها خود را با وجود شیر با وجود اخوانت پیغمبر خدر محبوب خدا میدان الم تره الى الذین يسکون انفسهون قیلت شما نگا نمی کنید بطرقان آئی که فاق و شاق و عرفی میکنن نفس های خدر نفس های خدر فاق و شاق و عرفی میکنن معیوب و عرفی نمی کنن الم تره الذین يسکون انفسهون بل الله يسکی من يشان بلکه خدای کریم تفکیه می و پاک می از خناه از کفر و شرک هر کسرا بخواهد خونه که از کفر و شرک توبل کند کفر و شرک را تشکیز بدهند مثلا که توی کفر توی شرک تفکیه نمیشه شید الله که پاک می هر کس را که بخواهد یلان آیت از کفر شر توبه میکنه اللہ تعالیٰ عن عرفات میکنه ولا لا يغلمون فتیلا و ظلمن کرد منش اولیل یکسر رای فتیل داخل هسته خورمه خواهی بایی که اونه فتیل پشت هسته خورمه کشت را دکیلاش برک اکمیلی پشت هسته خورمه سراخی هست اونه میگن نقیل اللہ طالبا هیچ انسانی نبا یهودین نبا نسرانی ونغیرہ یک کردن انشاءاللہ یدلوون فتیر انظر کیفی یفترون الله الكبر وکفا بهی شما نگتونو که جنبت اینها شما را احانت مکنن شرک حملی کنن بید حد هم به جمال معردی میکنن فاقصا نهن ابناء الله و احیبا تمام اولا کنها بندگان مقرب الائی را وہ انوان نائب معردی کردن آخر دیدر زمینه هم واره هم خدرہ وہ انوان و نائب معردی کردن نهن ابناء الله و احیبا اللہ صالح میکشمه لگا منی کنی کنی شهد اقتراب بر خدا درو شدر و غائی را انہا بر خدا ازر و جل اسرد کی امروز شما اگر نگاه کنید نائبان اینا را چیگت دروب به خدا نسبت دید؟ این عرفش را نا قرآن بفتر نا پیغمبر بفتر نا اول قایدش نمی کنند انباو اکسان دروب آره به خدا نسبت دید منظور که فی افترونه الالله اکدو افترام انا دروب شازیه نیکن چون کسی به تحریف چطور می بر خدا دروب و بی خدا نیست دیگر و کفا بهی اسما دیگر قابی همین ابتران برائی گناه بره توفر شدن بر الله خود الكذب و برای این هارم مختیق جهنم دائمی می کنند زد راشت خواب این اشرف بعد از اونکه مارکه بدر اوغود انجام دید اون رابطو مشکیم تحریق کرد در جنگ احضاب جنگ احزاب که دوازده هزار قابر شهر مدینه منوره را محاصل کردن در چهار هزی بود دو هزی بعد چه هزی احود بعد از احود احضاقش این ربطه تمام مشرکین مکه که دشمنان به اصطلاح میدان درگیر بودر تحریق کرد و آنها دیگه عربها را که در اطراف مکه مکرمه صاحب و غیره مغیره بودن در این مسیر بودن همه مشکین را که قبائل مختلیفی بودن تحریک کردن و دوازده هزار لشکل اینها در انخواب جمع کردن و رسول پاک صلی اللہ خندک زدن و بعد از خندک دیگر این تحریک کرد و آمد فنوز آنها نام داد بودن کار ابن اشرف الله عزّ و تعالى ابن اشرف تمام نشوند بودن که الله عزّ و تعالى شکست و کرد ونو نفیر که جلابت شد ونو کنشد چطور آمری مارا تحریک نکنی از همین چه خدر نبیر می همین شما می جدی هم می گفتی می گفتی اگلان چطور شده کنی خواهد جبه ما شما هم شما بودن که شما دین ما بہتر یا دین خود را نبی دین محمد شما ما ما واسی آرپا زیرائی می کنی او چکار او دکت رہنی کرده جائب می خانه کابره ویل کرده انسان آرپا من درگیت کرده حد دین شرک خود را ابو سوفیان مطرح ولی را و شیحصد و ششت پو جا ایمان باز تو تو معانوز باور نداری اگر شو معنی دین مغروب ہے جب تو تاغوت ربی ایک تاغیل کنید ان دو ثبوت گوی در مسئلہ علاما توزید آدم کہ جب تو تاغوت و معانی مختلف نید لیکن انجاد دو بود گوی دارن شیطان در انغامی رب تن اولا ثلام می این مولا رب برای شاید بود قبل بھی ایمان سجدے کو ترشکرت می تھی لیکن الان کہ در پیغمبر در قلب همین اللہ تعالی اشارہ نہیں قلم ترى الذین شما نے کہا پیغمبر کو ترا تو اولاد ایک کتاب باوجود ایمان داران یکمینون دی جید باوجود انکه خطاب این آت آده شده اینا تشدیق میکنن نام دو معنی میکنن شیطان را میگن شیطان هم میگن بوت مشخص لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَرَاِ کُفَّارِ مَكْهَ هَا اُولَهِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا شَبِلًا این مسلمی از آنها ایک ایمان آردن این من الَّذین آمَنُوا از نظر را رای ایل رای از و گفت انت موسیقین کفار اهدا من الذین آمنوا سبیلا شمرشن لعنهم الله. این آلا خدا لعنت کرد. خلا زیر لعنت و نفرین ایلہی کرانده خدا لعنت کنه شما برای اومد اداری کامنی خدا یاری لذا شما برای او هم یاری و مددگاری نه دنیا و آخرت همین که دو صحابه هیچ نکر هم نکردر فاهمی ایس هم همين همين و لایگوز هم سهداری همین قرآن و خدا شما برای او یاری شبیه که در می زدن رو از این دار من اوی خور اشباش دیم دکنر شرافت و جرده شاید از این مردم با من کاری دارد و ما مصافی مهمانیم نیخن مهمانی در حلمت شما باشیم از یه شره و پاومدی تو بفرمه این ما امینی چو آمد ام� خود را رسول گوزه البته اینا با اعزاظه گرفت در شما با اعزاظه بیدیم ایک کلماتی نیدی گوزه خبا شما چاری نداری برای نابودی ای شکر کنیم این اصلافی و خوبیت ناسی خیلی خوشحالی کنیم این دوشتری کنیم از یعنی شدیم آمد با اینا تازه امسی کردم این حق و گرم و صورتیشم خود داشت شما میگیم ما معلش میکنیم ما خیلی بلدیم اعراد شر یا خود را گفت من این کار اتاقم جبر مان میکردم خود یک مرتبه مسخر شما معلش میگم معلش میگم این دیگه مهارت میشه نیگیرم برو عرس مسخر شد مبلاته فکر شد ولی خبیرا چلا می خدای نارل لعنت کرده و ولانۃ خدا ان نتیجہ دارت کہ من یلعن اللہ فلن تجد له نصیر ہر ایک تو او یاری نبی بھی اس کے یار بھی شرائی یہودی نہ سارے که بیتر میکردن ازماتی من نبی خبول کلیم و ایمان و یاریم لها تکل ریاستی رو میرسی ریاستی که ما بر این ملت داری ای از ما در ریاست پوست مغاب اللہ سبحان و تعالیٰ ریاست اگر ریاست بھی انها برست اینها کسی برای ایک دانا هم میں نگیر یعنی یک ذرہ چی پوشت ایک سورا خست خورمہ ہم بکسیر نمیلن این معنی کنجد کنجدی کسی اگر باشد برای این از حکومت و ملک و ریاست ف اذل هش در این موقعون داشته باشند هر که هر چیز هر از یه قران به از یه قران به قران چیز ام به معنای بلد بلکه اینها این سادت دارن با مردم یعنی پیغمبر و شهابه برانچه که خدا اینایت کرده به مردم از فضل خودش نبوت داده ریاست داده الله تعالی میگه این محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نسل ابراهیم صلی اللہ علیہ ما در طول تاریخ به نسل ابراهیم حضرت ابراهیم ریاست نبوت حکومت دادیم چرا این رحمت داد دار؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ عظیم ما دادیم به آل ابراهیم کتاب دادیم حکمت و دانش و نبوت دادیم و به آنها و به آل ابراهیم که رسول الله و صحابه مهاجر از آل ابراهیم هستند هر ساز آل ابراهیم ما به آنها دادیم به آل ابراهیم و ابراهیم حکماطی عظیم و بزرگ بزرگ در طول تاریخ من هم من آمن و من هم من صد تقنیم اگر رسالت که شما را نفذیروف کرد شما مغموم نباشید چون تا عادت آنها قدیمی از قدیم این یهوبی ها یکی ده ایمان دار بودن یکی ده ایمان را تقنیم اتفاد از اینها قسانی بودن در طول تاریخ ایمان آوردن بی ابراهیم و بی کتاب آئی آسمانی و با دیان حبودن کردن از ایمان از ایمان و از ایمان بی ابراهیم جلوگیری کردن نهادہ برائی مجازاتی نهادر آخرت شخنم بس ہے کپا بشخنم شایرہ کافیر شخنم برائی اختیاری لغا شیر اللہ ان کلیم ما وارد آنها در جهنم. ما اینها را در جهنم وارد ابن اشرف را همه کفار را تحريك بر پیغمبر الله فلوقت واتسانم بدست شابها شابه کرام خود را را در می سوزد پوشت آنها پوشت آنها می سوزد تو عوض می کنی می ایماد آنها پوشتی غیر رجوع پوشت سوالاللہ چهرمن اینها را می سوزا و اینها را خود می کنه دو مرتبه گوشت و پوشت و اصطور از سرمان درست می چرا اینطور میکنیم لیزو کل عذابه حکمت تبدیل جلود غیرها غیر از اون جلود اولی جلود اومنت پوست جمع جلب عوض میکنیم لابن ما آنها را پوست دیگری قدیدی میدیم غیر از اون پوست اول سابه ششن عذاب را الله تعالی عزیزه با پوست قبلی هم میتونه شدانه و عذاب بده حکیم هست که پوشت اینها را فریسیم با هرون تو استعظم اول می کنید این مجازات کنید لیکی حکیمه کنید کنید این آره سعییس دشارت است وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَا شَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَدْلِي مِنْ تَعْبِلًا غَاب خاندین ابدا لهم تیها ازواد متحرات آناش قوت ایمانی و عملی سن درست مناره در واغا داخل بکنیم که از دیر اون باغا نهرها جایی هستن بیشه می مندون باغا برای آنها تو باغا جبتهای باقیزه هی هستن هم در نظر صورت هم از نظر سیره وان غربا داخل بکنیم سائقای بسیار برجا. ولیلا تاکید بردی اللہ من سائق بسیار برجات ایسا را آفتا بیشتون کرد حالان تا اینجا آیت انجام و بیان امور امتظامی رعیتی بود و در پایان زجر و تقدیب برای یهود و نشارا اپنون امور رائی را اللہ فعلا میگه شما پشت مقام، به کسی بیدید که لاید رو برس و بنابید همانات را به احلش کردید شان نزیری برای این آیه بیان می کنند سبسی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام بیت را از روز بوتا خواهد داخل می خواهد تشریف ببره. کلید را از کلیدار پیت خواستن ندارد خلالتا عزو گرفتن بزور خزا تحریب دست که وقال بسیم بود که کی این کلید دلیا نشیب ما بازد که ما کلیدار خانه کارش یہ بود دید کلیداری شکایتون خاص آف دادان ان اصطورای بودن که بین کلیدار شیعات تخیم میشون بعد اللہ تعالی این آیره محزید که امانت را که اهلش دید گرفتن کلید را و بگونه کلیددار اول دادن و اون شرمدی ایمان شد و پیغمبر تر بود خالدتن طالدتن برای همیشه این کلید با شما باشد میگن تا امروز هم در نسل این حثمان ابن مزهون کلید بر نسل اون کن سهل شده و الان هم کلیدار هم نقصی در مکنه کن فرموزی کلید را شما کش نمی گیرد نگر سواله در نسل این وقت کلید آنگه بید این خاطر اللہ تعالی دستور ندهد که هر کس این اللہ یامرکم خدا به شما دستور ندهد که بدهید امانات را به اهل تو عبد الامانات الهات میرا امانات خارج اہل الشط اس اگر کہتے کہ اعلی ان کو خیانت در ادا امانات ہیں ان کا ریاستی اینو به وایله حکم تون بین الناس جز دومه این قانون وقتی شما حکمیت کردی بین مردم که هم تحکمون به العاده ورابش مگه سری در حکمیت به عادی رو در واسیو قرطی بازیند حکمیت به عادی شما را حکم کاردادی وإذا حكمتم بين الناس ، خدا مش إن الله يأمركم أن تؤذل معنة العلا وإن الله يأمركم لذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل إن مفئول برايه ، يأمركم إذا كنت تحكم بحكم ، إن الله من عمّا يعيدكم الله امانات رب احل بھی اما اناثر بهن بدی اما اے برای نعما فایل نع نعما در اصل نعما ما می برادرین ادغام کردن نعما شد خیلی خوبه ارکی که نفیات مینکند شما را خدا به خدا چه وعد کرد چه نصیحت کرد که امانات را به احل بدید و وقتی حکمیت کردی، حکمیت به عدل انتخف رو به عدل این کان سمیغم بشیران بدرستی که اللہ تعالی هست شنوا فریاد فریاد کنندگان اندازان را میشنم بشیر حالان آرمی لعروا اگر شما امانات را به عنده دید می‌بیند و هر شما شماره می‌شنه، اگر شما در حکمیت خطا کردید، پارتي و پارتي بازی کردید، الله تعالی مطلعش. تشریح آدم، چطور آدم کنیم؟ انتخاب بر آدم. خوب، به آنچه خدا در قرآن گفتیم. و آنچه رسول الله به شما گفتند و آنچه که خاطبان امر شما هستند از این ما فقط کنی اطاعت کنی یای الاتی ناقامن اطیعوا الله اطاعت کنی خدا نه اطاعت کنی رسول الله و اطاعت کنی شایبان امر از شما باشد خدا را نه اطاعت کنی رسول را هم اطاعت کنی و سرایبان امر را که از شما هستند اطاعت سرولان گلامی احکامی که خدا در قرآن عزیم و شان گفتش اطاعت از این احکام اطاعت حالی احکامی که در حدیث گفت شده اون احکام احکام را اطاعت کردن اطاعت بسیلی شد خود اطاعت اولان میشید در اموری که مشروع من الله نیستن مشروع من الرسول نیستن شاهبان عدم وقتی به شما دستور نده اطاعت کنید من جمعه همین مقررات معلومهی و معلومهی اینها که در قرآن نه اینها در سنت نیستن لیکن مغررات برائے نه اگر واقعی ان مغررات را رعایت نہ همه در خطر است چرا چراغ غیر را, گر, را کنن اسl شراغ خیر نیست، شراغ استاد. اون رو کنه، حالا نوبتی که تونه راکش انتقاد کن. یا مثلاً ایستی که آنجا هست، برای ند نیستن عیات. دستول مقررات هست، از جایی غصه رفتشو حرکت می‌کنه. و برای خوب این چیزهایی که منسوخ من الله. منسوس من برای امر که ساعت حق این اطاعت حالا یک نادانی خدا یا رسول الله سات خوب، این دو تن سات هفت سات است برای فهمیدن ما ما قال الله و ما قال رسول الله. این غرراتی که خلافه، این برای نجس هستن. الله خداوندی بهت تحقیق. حاکم دستور جنگ میده. خواه. جنگ هم وکن خداست وکن رسوله خب یک روز دستور جنگه یک روزی دستور صلحه شما رو کرد. کنید پر تمام دید خالاً الامر در خانه شوهره شوهرش مقدره خالا ایچه خفایده تایدیش صاحب امر که دقیقی ابن عباش ترموده که از اول الامر مراه علماء امت هست علماء امت هست و دستورات خدا و رسول آقا ادارات و یک مسئله ای لا آنهامی فهمند عوام که نمی فهمند شما باید اطاعت کنید از صاحب بان کنن ولن هم حسن بن عباس قلوان لیکن اولول امره شما باشند بوص بدر شما نسا. این ها را نباید بفاحت نشوارا کافر میکنی صاحبان امریکا از شما و این هم شما بدانید که این صاحبان امر دستوری خلاف خدا و رسول نده اگر صاحبان امر دستوری دادن که دستور آنها خلاف دستور خدا است. دستور آنها خلاف دستور رسول هست از اونجا اللہ باعت لی مخلوق دیماشیت خواب پیغمبر که خلاف خدا نبید کنه اونال امر جر رسولی دار خلاف خدا و رسول اونال امر هر که واشت اطاعتش لازمی است این مساله را آیه بعدی نگیم ان سنت انعاداته شما با صاحبان ام اگر اختلافی کردید یا با خودتان اختلافی کردید حل این اختلاف را رد کنید به طرف خدا و به طرف رسول خدا به طرف خدا رد کنید یعنی به کتاب خدا رد به طرف رسول در مدت حیات و بعد به طرف سنت فشنه مسئله بین شما و بین قول الامر مختلفی. یا شما با اولو لام یا اولو لام را با شما، تو فوق می‌ایم را به خدا و رسولان. در به خدا را دشمنیانی به قرآن، به کتاب، به رسول در حیات و بعد سیات به سنت انسان. اگر شما واقعا ایمان دلله و لیوم آخرت. ذرک. إن اطاعت الخدا و رسول الأمر اول الامر إلى الكتاب والسنه خير بهتر در راحت و امر در دنيا بهتر و احسن النظر نتيجه در اخرت تعبيل من النكيزه نتيجه شما خدا را رسول و اول الامر اطاعت كرديد و به خدا و رسول رفت کردید که ما تعبیر از شریعت غراحت نقضی برای شما هم در دنیا بهتر است هم برای شما راحت و امنیت دارد و احسن و تعدید و دیواتر است از نظر نتیجه در آخرت باز داجر بر منافجی آمد این منافج شان نزول آیه را می بعد ترجمه شروع کرد منافقی با یک یهودی در مخلی اختلاف داشتن نیخواستن این اختلاف را به پیغمبر رد کنن یهودی نیمو باید به نبیش کنن خوبا صفحه می گو لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ و نماز آمین خاندن لیکن دنونش نفات او روی گفت که نا پیش رعیف شما و عالم شما قاب ابن اشرف باید با کنجا ببین نظیف هم عالم شما یا عمر شدیل شما یهودی می دانید که قاب ابن اشرف نشرت خاند خالق چه سرداری باشد اونم سردار علم داشته باشد و عدالت را رعایت کلد تباہن کھامیشت منافق طرف کعب ابن اشرف دعوت غزیر امی بری و اشتلاف راہل بکنی یہودی بگو من کسی قبول کردی من بگو ایک بڑھ که یہودی خاملاً میدانیشت کہ درماجیس پیغمدہ وسلم رو دروازی و رشوت و رشوت, و رشوت, و رشوت, و رشوت و خیانت که ها اتراب آخر پیغمبر السلام اجتماع و دلائل و, و اذان یهودی ثابت شد برای یهودی بیرون از منزل پرغمبر گرفت یهودی را نباید قصدی رماد امر بکنی کسی امر شما پیش کرد خودنا باید دیگی خیلی برای یهودیان یهودی هر یهودی از نام امر بکنی ای که برپیکر اینها آمده آخر پوپن نبا نبی کر دے. نبی شما نبی من خوب بخشت تو کی میگی پیلی رابطہ دار بخانی آزد چیئے تو بھی تو شما را تحصیل شده حضور شما خود ذل حنید تولیی تو محمدی شما سول ہی دار می آنم آنگید ایم روز را دیگه های نمی شم جگه سول ببرا پاو بیار راتی بشی مقداری تو بیار کچھا سول ببرا نید نوبت بکستم ایت آجی آگای کارتو کلو کستم دن کلو دعوت بکستم ایت سول ہی چکی نادره هاپ ساکتی جب پیغمبر رو یک هاپ پیش رکر دی بین ما یک میشه کپا دو شیر اگر مشکی هم میزن حضرت عمر اون مشکی موسا مشکی بخارش عمر بعد از رسول اللہ با یک این فشلی عمر بعد از فشلی رستی شهر مدینه و غاشم شه عمر انسانی کشده ولکو دی اخیصات حیات و آیت خانده و دیشتر صفات صلی اللہ محبوش آیات نازج شده و خدای اصل و جل خوبی دارد عمر جان مومنی نکشده کافری کشده مثل اینیس کافر ایسی کشده شان موجودی این آیات را مفصلی الذين بما وما من که ایمان نکرده بود اختلاف داشت. کنی که فکر ایمان آوردن بیما انزلیلک و ایمان آوردن بیما انزل من قبلک باغتونی این گمان و ادعای ایمان ارادت آران که فیصلم بیبرن طرف تاغود قاب ابن اشرف انجا تاغود کی رگو؟ قاب ابن اشرف حالان که اینا امر کرده شده طرف شریعت غرار که انکار کنن دین همه تاغوت آره اعتقاداً عمل حکمیت بطاغوت، حکمیت ببوش، و به تازمان ملل کفری نبرن، خوط بطاغوت کنن، حاکم خدا را میدانن، و اراده کرد شیطان که گمراه کن دین حال گمراهی بشیار دوراً حد، وکی بیانها گفتمی شویر، تعالو الی ما نزل اللہ، یا جترکان چه قرآن لازل کرده، و الى الرسول بطرف الرسول بیعید یهودی مگبرین بطرف پیغمبر شما که فیصله کنات مطابقه قانون خود شما ممانزل اللہ فیصله کنات رأیت المنافقین تمیدینی منافقارا کسدونن کسدودا بمی شوان اصیص لیشما برشدنی الی غیر کمی برن خیلی منافق شکاب ابن اشرت میدی ایسا دو نا انکش خوب شما بل شدن خیلی فکیفا اتنو همون نشنه کردن پاروک آزم اون افتر بعد از کیفا یا اصنعون اصنعون مقدر چطور میکنن انها وقتی میرسد جو انها مشیبتی قتل از درست پاروک بسبب اون خطائی کی تقدیم کردن دستانها تردیم حکمیت الاغیر رسول کرتا تو مجاوکا بات آمدا در محضر پیغمبر ختم می خورن خدا خالی ربنا بکی کہ ما اراده نداشتیم بالمحاکمت الاغیرک الا احسان و فوقی کا اراده نیکی بوده موافقت بوده یعنی صلح و عشقی مقصد بوده اعتراض پر شما شمان بوده تردیم انتابیم کلایکالذین عالم الله ما فی قلوبیم نکسان است الله تعالی نی دند نفاق را که در دلیناش لزات هم بر باعث مصلحت و مقصد نکرده اینارو سخت موقت نکن ارزش ترمادی است وعده ها نتیات هم بکنی نهار علی دوام به اعتبار من سر رساله شما تو من سر رساله دارید نتیات هم بکنید و بگید برای اینها في أنفسهم قالا بليغات در نفسنا تو خودنا بلبار شمال فاق کرد فلا مناطقه كشتر شده بشتر شده. كل في أنفسهم قالا بليغات خالياً بهم فإن النصحة في سر أنجا دقیحت سيقاقين نحنمانا در سر سلماً لفرش. از شما در ظلول است یک خطای اول اینها از قطعات و پرمان رسول سخت حالان که هر رسول مطاحت حرف پیغمبر و دستور پیغمبر دل بخواهی نیست. اگر خواستند بپذیرند و اگر نخواستند نپذیرند برکنار فقیم بر مطهر قوم ارسل نمیر رسولن ما نفرستادیم یک فقیم بری را ایلا مگر اطاعت کرده شود فقیم بر مطهر فرق فقیم بر این مخالفت رسول کردند دل بخائنی ما نبرستادی ایت پیغمبری را مگر برای این اطاعت کرده شود به فرمان خدا همه دو اطاعت کنند و از زیر بار دفتور پیغمبر هیچ کسی بیرون نبید از الله تعالی میگه اول که مخالفت پیغمبر کردن الان تدارف نمی کنند خب مخالفت حکمیت پیغمبر کشته شده حالا اینها ادعای کساس و ادعای شرافت و ادعای لنگ چکی نمی اگر این خطای دوگون اناس ادم تدارو مخالفت رخیم خطا اول مخالفت رسول کردن خطای دوگون که خطا الان تدارو کنمی اگر اینها هنگامی که ظلم کردن چطور؟ به صحافت مهم این حکمیت را به تاغوت بردن، خشمی کردن، از همون اول به حکمیت پیغمبر راضی نبودن. تنگامی که ظلم کردن یعنی می کشید به طرف تاغوت می برد حکمیت را. اگر می آمدن در حیات شما با ندامه و پستغ و پستغ طلب بخشش می از خدا، و بخش شمی خواست برانها پیغمبر بعد از ایمان خالد تو می آفتنینا خدا را و تزیر و مدران قرآن این ها را بیش تاغوت بردن فلا و رب کلای اومنون فلای اومنون و به پروردگار تو کسم اے پیغمبر این ایمان ندارن ایماندار نیستند تا زمانی که شما را حاکم قرار ندن در آن مسائلی که مختلف سجد دهیدن و بعض نی آون در مسائل خودشان خرج و تنگیز زیکن و شکن از آنکه شما پرشل کرده و تسلیم بی شون ظاهران و باطن و یسلیم و تشمیم تا اون زمان که اینها به حکمیت شما دیدنید باید هم انسان از سرمان شریعت و قانون خدا در شخص تنگیل اکنی لایدی دیان خسیل حراج حراج مانه ریت و شک و ظاهران و باطلا تشکیم میشن سا اول دمان اگر کسی به حکم خدا و پیغمبر تخلیم نشود ظاهران و باطلا اون رو امروز مردم نگه که شریعت ساحت ما به غانون مراسلی این مردم اگر احساس کنن که در شریعت هر جان آسوخ میکنن الها خمس ایمان ندار فلا و ربی کلا یعنی حتی یحکمو کپی منشگر در مسائل اختلافی شمارا حاکم کران و بعد از حکمیت شما احساس تنگی تنگیفن نکنن لا یجدون بیان در سمحرات ویسلمو تکلیم ظاهرنام بسببه بنيت شريعت من خدا و چنان دعوانا واسطه الحمد لله رب العالمين